حالا میخوام با شما در رابطه با هرمون ها و نقش ها در فرایند زایمان صحبت بکنم اولین هرمونی که در رابطه با اون صحبت میکنم هرمون اکسیتوسین هستش اکسیتوسین بهترین هرمون شناخته شده در روند زایمانه که به این هرمون هرمون عشق هم گفته میشه چرا که هر جایی که پای عشق و دوستی و محبت در میان باشه اکسیتوسین ترشح میشه در تیه فعالیت جنسی، در هنگام تولد و در زمان شیردهی این هرمون در اوج ترشح خودش قرار داره. به گفته میشل اودند هر جایی که سخن از عشق و دوستی باشه اکسیتوسین در اونجا حضور داره. اکسیتوسین در هیپوتالاموس مقص ساخته میشه و در هیپوفیز خلفی هم زخیره میشه. در طی فرایند زایمان اکسیتوسین منجر به بروز انقبازات منظم در ازاله رحم میشه و با این کار کمک به نزول جنین در کانال زایمان و لگن مادر میشه بعد از زایمان همترش ترشاه اکسیتوسین منجر به خروج سریع جفت میشه بعد از تولد طی ماهها و سالهای شیردهی اکسیتوسین به مادر کمک میکنه تا آروم باشه و خوب تغذیه کنه. بررسی و تحقیقات نشون دادن که اکسیتوسین یک ماده بسیار مناسب ضد استرسه و از خیلی از بیماری های مادر مثل افسردگی بعد از زایمان پیشگیری میکنه. غیر از نقشی که اکسیتوسین بر روی باربری داره دیده شده که در شرایطی مانند رعایت حال دیگران عشق و دوستی و محبت هم ترشاه میشه عمل کرده نامناسب اکسیتوسین در برخی از بیماری ها مثل اسکیزوفرنی، اوتیس، بیماری های غربی و, و در افراد متاد دیده شده. امروزه از اکسیتوسین در تهیه داروهای زده افسردگی استفاده میشه. اگر بخوام یک جنبندی در رابطه با اکسیتوسین داشته باشم، در این موارد ترشح هورمون اکسیتوسین تحریک میشه یک زمانی که قسمت مخصوصی از بدن شما تحریک بشه مثل نکه هاتون، واجن، دهانه رحم، پرینه و اندام تناسلی شما همچنین زمانی که تماس پوست با پوست یا چشم به چشم با نوزادتون برقرار میکنید اکسیتوسین ترشح میشه اما یه سری اقدامات باعث میشن که ترشح اکسیتوسین کاهش پیدا بکنید اقداماتی مانند ناراحتی و عدم آسایش شما و همچنین نگرانی و استرس بیش از اندازه. همچنین استفاده از داروهای ضد درد و استفاده از بیهسی موضعی و از همه مهمتر استفاده از اکسیتوسین سنائی یا همون آمپول فشاری که در روند زایمان ازش زیاد استفاده میشه. برای یک زایمان فیزیولوژیک ما نیازمند ترشوه کافی و مناسب اکسیتوسین طبیعی در بدن مادر هستیم بنابراین باید شرایط مناسب رو برای عملکرد این هرمون فراهم کنیم